بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازم تبان نحایت بامرحیم هنگامی که یاری خداوند و پیروزی فرارسی و دیدی که مردم گروه گروه به دین خداوند داخل می شوند پس پروردگار خود را بکا کی یاد کن و از او آمرزش بخواب حقا که او بشار توب پذیر است